بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین، اصفال الله و علا سیدنا رجیل الله و آله طیبین و قاهرین و معصومین و لعتو دارمت علا دارم اجمعین اللهم افرنا جمعی المحللین و رحمنا و رحمتکی و رحمه رحیم هر سود که رضی به رشوه گفتیم که روایات رو بخونیم و یواشواش از اون طرف هم به آیات و که در این ذکر شده نزدی کشم از شد که یکی روایتی بود که برست را آیان یا زرارت سهار در محنفیه مال امار ابن مروان و این روایت را مرمون کولیمی پوردن در کتابشون و اگر به ظاهر عبارت مرموم کلینی به اصطلاح نگاه بکنیم در حیرت ایشون با نه طریق روایت رو برده. چون ایشون پنج طریق در احمد عشقی داره، چهار طریق هم با سهر بن که اصلا محقایر هم یعنی تاری طریق مشترکی بین دو دوتا نیست و احتمال دیدم که مرموم کلینی در سوژیاز جهاز کردیم هم در با این کسط تروح نروی کرده تا بگه در مطلب اشتباهی در حال بر می این طریق به کتاب ابن محبوب و که در این نسخه ابن رعاب انا امار ابن محبان ابن رعاب هم اونجای کمی همچین عجیب قرید البته به اصطلاح ما فقط در همین نسخه اسم ابن رعاب رو داریم جای دیگه رواست ابن رعاب هست ما نداریم با این ترتیب رو همچطور نبودنش هم دلیل هست یه نکته‌ای هم حالا نکته زیاده من خیلی فرامون بحث‌های رجالی بسیار ضعیف و لغوی است میشه هم وارد شاید جدی فقط من یه نکته رو من شب مثلا گفتم این روایت هست ممکن اساسا بعض از عیان به کتاب موعجم مو استاد مراجعه کنه از روایت که ابن رباط دو تا آورده مثلا انا و انه ابن رباط و انا علی ابن رعب. دو تا دو تا در آخه جلی که مربوطه به اماره دوازده جلی دوازه اماره بیاندن من شون نصابه من شرارن و مرارن عرض کرده بودم باز هم عرض میکنم مرموم استاد حدیث مکرر رو نمیبیسن این خیلی یکی از مشکلات کتابیشان همینه مثلا در اینجا این حدیث در کتاب کافی آمده ابن را آب مرموم شیخ توسی هم در تحضیح ابتدا به اسم حسن محبوب کرده ایشون اوله علیه ابن رآ رواید یکیه تمام جوادش یکیه فقط در کتاب کافی آمده ابن رآ در کتاب تحضیح آمده علیه ابن رآ ایشون دو تا نوشتان این دو تا رواید ابن رآ همین روایده بقیه ایشون همین سند همین محطه همینه این حسنی در کتاب مرحوم استاد. که این تعدده ها رو توضیح نمیدن این در حیقت یک حدیثه نه دو تا حدیث نه اینکه دو داریم ابن رعب از فرس ببینیم که از انمار نرد کرده ابن رعب یکی همین منحصر بینیم امبته چون در ذهن خدای و دیگران بود شدن علت شایدر تو بریم شدیشونی خودشون استخداشونم اون حیعت در ذهنشون این بوده که شیخ توصی اسم کلیمی رو نورده بوده مح... حسن محبوب پس در حقیقت دو تا میشه یک کتاب کلیمی ایکم کتاب لحسن محبوب من سابقا تونزیحن عرض کردم شیخ توتی درست اگر نام کسی رو برد ارتضا به اسمون کرد از کتاب شد که در اکه دلی تصریح کرده یکی از غیر کتابشون نرمی میکنه یکی جمعی همین حسن محبوبه حسن محبوب اشون برای حسن محبوب من حیث و در مشخشی شریع داره خود حسن محبوب یکیش کلینیه از کتاب کلینگه حسن محبوب مراد چی کتاب کلینیه یکیش کتاب خود در محبوب یا بردش نیم بخوا چون جای بس نیست حال کاملا واضحه اصلا این احادیسی در این صفحه هستن کتاب تنزیر دو صفحه قبل و بعدش کلن از محمله همه را از کتاب کافی نهار کرده از اونجا تصدیر کرده قبلش رو بعد محمد نهار بود هیچه تصدیر نکرده و هر حال اون چی که ما داریم همین یک روایت محمد نهار رو در کتاب تحضیر هم آمده به قطعه رو چیز تازه ای نیست دوتا نیست یک دان روایت بیشتر ابن را آب نداریم و احتمال این که کلینی اشتباه کرده باشن برای به حال جای کار خرابه نمی‌دونی، خود ما هم نمیدونن تصمیمه هایی بگیریم انا اممار ابن مروان قال جعفر این هم خیلی مشکله چون اممار ابن مروان جز اصحاب عبی جعفر زیر نشده مثلا وقتی در نورفه نگار نگاه میکنیم و نگاهیات هر دو راوی معروف کتاب اممار محمد ابن سنانه اصولا محمد محمد ابن از اصحاب ابی جعفر نقل نمیکنه و فعلا هم از ابی جعفت هم یکی رو این در کل کتوق ما منحسر در اینه که هم در کافی آمده هم در تحسید لذا الان خیلی مشکله قبول این مرد قبول خیلی مشکله از اون برایم واقعا اگر احتمال بودی مرحوم کنی این مقدار اشتباه کرده باشی خیلی عجیم میشه. میکنم احتمالی که من علاوه نسخه ایشان این طور بوده حالا نسخه رو قبول بکنیم بحث دیگری است چون ایشان از نه تری این نسخه رو نراجع کرده 4 تری به شما زیاد 8 شده مال احمد اشرف و خیلی زیاده دیگه شوخی و شواهد هیچ وقت معیّن نیست که رو وارد نمی جربد باش. قال سلف خواجه خان ان قلول فقال كل شيء نقول من الامام فهو غلون رو داخل در صحب دیگه و عقل مال یتین و شبیهی صحب البته این شبیهی بعد از نصف شبهتو داره و صحبتو انواع کسیره در روز داره منها اجور پواجر و سن خم و نبیز و موسیر و اول بعد بعدت فهم مره شاق الهوف این ندالتا کفت بالله العظیم جل اسمه بر رسوله صلی الله علیه و آله و سلم خلاصه حدیث که در اینجا به اصطلاح مسئله رشوه و رشاده در حکر رو کفر گرفته نه صبح ارز شد که این حدیث در کتاب شیخ تروسیان از همین کتاب کافی نهار کده مثل کافیه فهم با کافی نداره مختصر این اینجا ادن رعاب داره اینجا ادن رعاب داره شده و مختصر از عرض شده و اما دیوز ارز کردیم که این حدیث در دو کتاب صدور که خسال به این معامل اخبار آمده دیروز شمسندش رو توضیح دادیم در هر دو با اینکه از دو هم هست ابن محبوب این عبیعیوب این عمارم مروان اینجا ازن کلیم با اون فرم بکنه بعدا قال سه از ابو عبدالله قال ابو این هم ما الان نمیدونیم چی کارش میکنیم چی مثلا چی جوری درست بشه که این کار چی بوده به هر حال فعلا یک احتمال داره که این از کتاب خود ابو ایوب باشه چون که حساب نوادر باشه نقل کلمی از رو نمی این احتمال هست اما این نمیشه صرف بشیم در عوض یک مشکل اساسی در درجا هست این مشکل اساسی نه به لحاظینی روایت ها یعنی روایت جدید شاید به شکلی یک جهتی مشکل اساسی درست نمی کنه ولی تام درست میکنه اما مشکل اساسی احادیث مشابه اینه یعنی ما بحثمون اینه که وقتی اینطور اختلاف میاد این اختلاف رو به امام نسبت بدیم یا به نسخه نسبت بدیم این اساس کار اینه یعنی مثلا بگیم امام باقر اینجور فرمودن امام صادق اینجور فهمنده مثلا در اون که امام صادق، امام باقر اسم فدرت القاضی نبود اما در این مطمئن اینه کلوشه این قلل نلمان فاوسو و از و انواع کسیره تا اینجا مثل همه ها ما اصیب من احماد الولاست پولی که انسان از کار کردن در دستان زمانه به دست میاره اینم صحته و منها اجور رو گذار این اجور رو این نسخه یعنی یک نیم سفر توی نسخه صدوق آمده که اون نین سفر توی نسخه مرحوم شیخ کلیم نیست. وقت اون نقطه فنی هم داره که انشاء در در آیات اشاره میکنه وقت نکته همیش این میشه خود دقت بکنید این نقطه نکته داره با اون اینکه اجرال قاضی سوفته. تا کل قاضی میشه اما رشوه در حکم کفت میشه حالا این هم با قول هم این آیه صبح نگاه کنی واقعا یک ذرافه تو آیه هست که این متن دومون با او بهتر میخواه من میگم براتان توضیحشی میدم خیلی عجیبه در روایت کلی اینه عجرالقاضی نیامده اصلا مابوسی من اعمال الورات زنه نیامده. بعدم در این به باری از ها ما اصیبه منه اعمال الولاد از ظلمه که که کارمنده عمل کارمند کارمندی این ظلمه باشه و منها ها اجور و این منها ها به این قبلی بر یعنی از اموالی که از اعمال ظلمه هست یکیشم اجر قاضیه پس این شامل میشه حتی چون جده که ظلمه به خوزات میگرد به قوه قضا میگرد یا کلمه ای و منها ناظره به انواع و انواع و انواق که دیره منها حجور خوزا خوزن شد نا پیه فرمه فرمشه اینه که اجرپادی مطلقا حرام میشه و از طرف هم نگیره از دولت میگیره و بعد در نمیاد برشیم در نمیاد که اگر از طرف گرفت اون حرام باشه اونی که از دولت و ولات زرمت حرام میشه اما پولی که از طرفه این بگیره وقتی موقعی این طور بخونه من من من من من و منها منها منها منها و منها اجور و خوزار اینه عجر قاضی پولی که شما به قاضی مزلی که میبین پولی که به قاضی میدین حرام حراموها رو طرف این بگیره فرمین پولی که از دستگاه ظلم و جنایت انسان میگیره اون هم حرامه عجل هم که قاضی میگیره مصحره حرامه چه از طرفه دیگه چه از حکومت میگیره کلا حرامه پس ثناوری اینجوری میشه این روایت مفاضه خیلی لطیف به مفاضره این مفاضی روایت میشه اجر القاضی اما رشوه در حب که من پول بشم به رغم من حکومت این کفه این صحبت دیگه صورت بالا کرده بنابر روایتی که مرحوم سلوک آوردن این دیگه صحب نیست این از صحب خواده اون دوبونیش که صحب یعنی اصطدا کفره توی روز کافی همه هست اما این رسمتیش که الان به درد منحنوزی همه که اجور رو گذار اصلا صحبه عروره شافل حق کفرون وقت در نسیم این روایت مبارکه طبق این تصویری که ما کرده نصفت با آیاتیه آیا نازل با آیه غلول و من یاتم این نمیاد در نیست در آل سفر سفر این نیست. این صحبت صحبت. آیه انسان صفحه شخصیه و من یاتم و غل یوم دیام لازم نیست کلمات باشه این روایت که نازل به آیات سوره تهاوع و نازل اون زیر آیه و من لم انزل الله و اون آیه دیگه از بدید این وقت مبارکه ناظره بگیم دوتا آیه میشه اون وقت اون نقطه اساسی اینه که آیا قبول کنیم هر دو رو بگیم اینم حجت اون هم حجت مخصوصاً که ایکی از امام باغره که از امام سادره این اینجور فرض بکنیم که جناب امار ابن مروان از امام باغرش میده بوده توش اوجور و ازاد نبوده بعد خدمت امام تمامی صادق اهل کل امام صادق وجود غذا تری کردن هر دو روز قبول می‌کنی. تقریباً بگیم که هم سال استایی، اون هم سال که کس هر دو قبول می‌کند. نتیجه آشن شد، نتیجه قبول هر دو. به اصطلاحی که من قول وقت عرض هم میشه از احادیث اعلی. یعنی یک بار ازمون صادق شدی، بادی. یک بار یعنی اگر اون بود گفت فضاده ابو ابود الله، ولی اینجوری چیز این و از سرین مشکلی که در این زباید هست ثبوت این که امار ابن مروان از امام باقر نقل بکنه مشکله. از اشار اینجا هست لن یه نقل اشار از امام باقر سرات الله و علی با اینکه که نهت نسخه داره مروان کلینی نقل میکنه انصافا خالی از شبه نیست و الان ما نمیتونیم به طبق تصوراتی که داریم این رو نصفت بدیم به خود امام ما این الان اختلافی که در اختلافی که پیدا شده این باغر علی از نراعب عبو ایوب این رو یا باید به کتاب عبو ایوب یا کتاب حسن محبوب ارجاع بدیم البته ارزو کنم شما میگه خب قبل از اینکه ارجاع این اختلاف در کتاب کافی اختلاف ماند اخبار صدوق بود فرسون بودی جلوکتر مشکل هر نکرد راسته ما با من مشکل رو هر نکردیم این فقط این میمانه که هنوز آیا نسخه کتاب حسن چه بوده. اون مقداری که بشتیم ما یه نسخه محمد حسین نقر کرده اون همون نقل صدوخ یه نسخه ای در اختیار عیاشی بوده مرسل نقل کرده اونم نقل صدوخ اون اونم داره عمال اطیق نروان شدیه نقل صدوخ یه نسخه احمد نقل کرده نسخه احمد هم دو جاست به این نسخه سر نسخه سر در احسیار کنهی بود این همی که نقص داره و ابو جعفر سامبا یه نسخه احمد این نسخه احمده دو جوره سعد نهار کرده نسخه نسخه دیگه نسخه, نسخه مشهور نسخه نسخه صدو توی زیادی داره لیکن ادتا من اصحابنا کنه نهار کرده باز نسخه سعده یک مشکلی الان در این روایت هست که ما الان دقیقا تشریف نسخه رو نمی کنم بگیم که نسخه چیه و این بحث از سرم اختصاص بین روایت نداره ما معتقدیم اگر خود در روایات ما تعمل بشه چیزی حدود هشتاد درصدی موادی که هم تا آرز هست تا آرز ما نسخه ما مال امام نیست نه اینکه کلام مال امام هست. اصلا نمیشتیم اصلا سمن رو به امام برسه قبل از اصلا به امام نسخه خرامی داره قبل از اینکه به امام برسه نسخه خرابی داره مثلا احمد از احمد دو جور نفت از از ا صادق توسط سعد نرم میکنه این زیادی توش هست ابو عبد الله توش هست. کلینی توسط های نفر نرم میکنه نه اون زیادی توش هست ابو جعفر توش هست. غیر از هستن معروف ما دقیقاً نمی دونیم نسخه در قوم بوده. کلینی به نظر من کلینی مخاطب تأکید بکنه که من اشتباه نکردم. همون انقدره که ما عجیب بوده. این نگرانه که ما وجدانه. همشو کدوم داشتن نگفتم. ظاهر کلی نخورد کرده بشه ظاهرش اینطوره بعد از مروان کلینی شیخ صدوق دو تا نقد داره در دو مسترش این مخالفه معاصر کلینی عیاشی داره اونم با کلینی موافق نیست از اون وقت عمار بن مروان مرسل به اصطلاح این مرسل شده فی ماده مذهب صدوق بعد از کلینی این واقعا یوقات بزرگان ما کارهای عجیبه انجام میدن واقعا مرحوم و اصلا رویاته نه رو تو تقیی کتاب اصلیش نهی بوده تو دوش کتاب فرقیش خیلی عجیبه چقدر این مرد دقیقه احتمالا این استرال بودتون بله همه تو گم بودن دیگه احمد هم تو گم بوده سالین تو قم بوده ما تمام این نسخم هم هم به احتمال اپنی مرحوم صدق رزانداتالانه اختلاف رو که بیگه اینه حدیث مستربه اصلا در فقیه نیورد اصلا که این حدیث در فقیه نیورده اینو خیلی عجیب من جزه عجایب کاره مانه لفقه را شیستا بله عرض اون, اون احتمالا جرم به روایات کرده چون اون قاله که ایشون در فقید داره لذیه رایتی نیامده ایشون در فقید حالا قاله مگر درگرده به ما اون ساده شد برای این قرمی یک مثل راجع به صحت نهازه در فقید در هیچ روایتی نیامده منفردن در صدوقه. که به ذهن ما این جمع بین روایتی تیک, تیک تیکی گرفته تیک از این رویتی تیک از اون رویتی تیک تیکه گرفته و شاید هم من دیوزم ارز کردم شاید هم سر مطلب تا حدی این بود مشهور بین آممه در روایات صحف سه چیزه. که تصابقا یکیش هم پیش ما جزه صحف نیست آن عجیبه اونی که پیش آممه جزه به اصطلاح صحفه سهیده، یکی محرول بقیه بودی که به نوست رو دزنه بدکار سردامن میشه یکم سمانم کرد، یکم کسبال حکیان حالا کسبال حکیان بیشه ما جز صحبی نیست در اسامیل صحیحه و معتبره اونها این سه چیز صحب نهی نه هم داره، نه ها امر ام بقیم و امر کسبال حکیان این هم داره، خدیث هم داره، سنی ها سه مرسی داره هم دارن. حالا برای این که تبرکی هم بشه که من در حاجی مرسی خدا بگشم مقریب بشین بطن عبارات خونده بشه تمازی رو بشن کنی این عباراتی رو که بعد مرحوم در کتب اهل سنت آمده من داریت دو متنش اینجا میخونم یکیش این که در کتاب بخاری و مسلم نه رسول الله رسول نها انسان الکل و مهر البری و حلوان الکاهه این حلوان الکاهه که انسان دیگه مال خلصات اون مال جنجیرا و دنگیرسن. باز دو مرتبه قال ثمنل کذ حدیث و مهر البغیه حدیث و کسبول حجم حدیث در سهی ابن حبان اون که اینا مال مسلمه بود در سهی ابن حبان قال صلی الله علیه و آله مهر و ثمنل کذ و کسب الحجام بنسط در روایات اهل به صحت از این ست خیلی بیشتر شده یک مقدارش هم اختلاف تار کسبال حجام بوده این زمینه های ما با اونا روشن بچه که بحث در چیزیه کسبال حجام که هجام است که هجامت میکنم پول رو بگیرم مثلا در روایات ما این جو آمده که کسبال حجام که پیغمان را اگه را اگر بکنه اما اگر نه آمد هجامت گردی کوری همیشون اون اشکال نداره این طور ما آمده توی یک حتابای هم برزش آمده اما سابقاً هم به یک مناسبه عرف کردیم این از همون اوائل در روایات ما عدد صوت بیشتر شده اگر یاد محارفون باشی این خوندیم در این کتاب جهان احادیس هم جلد 22 در این جدید گرد صفحه 24 باب 10 یه رواه بسیار مفصلیه در جعفریات در سن منصوب از ومیر مومنی قال من از صحب و سمن لغاق و محر البری و کسب الحجام کلام خوبی و عجرال کاهن تو بخش شروع و عجرال قطیب و عجرال فراتون احنام به اصطلاف مصری باشه نوچی و اجر الميزان مثلا ترازو داره میگه داری تو کشیده اند الا تحفيزا فلان و ثمنو شقران و ثمنو نرد و ثمنو در بوزینه تا میمون و جرود سبا و جرود الميته قبل ان شود به خدای عجیبی بفطره سنیان میخوختون جرود دیگه بابد در لباقی نیست ثمنو کر و اجر و شرقی و, و شرقی شر... شر... شر... شر... شر... شر... الا انقال و اجوال قاضی خیلی زیادی این در دواز 15 از به حساب کرده این خیلی زیاده هیچ مثلی ما به این مفصلی نداریم توی واسه ما الان نیست منحسر است به جعفریات آیا واقعا این کتاب سکونیست چون ما رو بازه سکونی هم هم میخونیم امروز داریم اما اینا توش نیست در ازن توی این کتاب جعفریات و اجوال قاضی آمده تو اون اجور قضاق درست میکنه کسون عجم آمده حالا از همش عجیبتر تر رشت را تو حکم تو آمده یعنی رشت در حکم یا رشت در حکم رو جزء سوخت صحت آمده تو اون به وقت کفت نیست کفت رو به تو صحت داره کنیش باز در زیلش اینم عجیبه و اجر قاضی رو تکرار کرده چکه دار جرده و اجر القاضی الا قاضی یجری علیهم بیت المال یا یجر علیهم بیت المال و اجر المؤذن الا مؤذن یجری یجر علیهم بیت المال در زد و مرتبه عجر القاضی رو برده بیگه از بیت المال اشغال نداره اما از طرف نگیره و عجر القاضی این حالا از عجایب بشین که اولا ما در روایت که از کتاب ست کنید کنید توی شمید توی اسلام هم این نیامده این هم خیلی عجیبه این هم روز غرایب که در دعایمون اسلام که قاعدتا دعایمون اسلام کنال احس کردید از همین کتاب به اصطلاح به اصطلاح کتاب شد داشته کتاب جعفریاد. باز هم این نقل مفصل رو نقل نکرد این راجب قاضی که الان من موجود یک نسخه از امار مروان هست لیکن این روایت یک مشکل داره که رشنه رو با قاضی در یه رسو گرسه اما در روایت امار ابن مروان قاضی رو صحف گرفته رشنه رو کفر بله گرسه این هم به این روایت هست. ازترافی که الان از در متن روایت وجود داره که ما هم واقعا یک راه درسته حسابی هم برای شناس متن اصلیش نداریم و هم یک راه درسته حسابی برای علت این تعارضی که پیدا شده نسخن. نسخن. ازا شارک چرا گفتن؟ اما بدون شهر چرا هست حدیث شماره دو برگردیم به کتاب مرحوم سال وسائل حدیث شماره دو ان مرموم کولینی این ادت من اصحابنا این احمد ابن, عبی... احمد ابن عبدالله که مراد برغیه ان الجامورانی جامورانی اهل رای بوده محمد ابن احمد الجامورانی، این تضعیف شده و کتابی از راشت اصلا رایه کتابش هم برغیه احتمال داره کتاب مون باشی ان ال حسن ابن علی ابن عبی حمزه بسر علی ابن عبی حمزه بطاینی معروف که حتی از صدرش مثلا داره اگر والدی این زرعه این زرعه این نیست مشکل علیه السلام از سخت و منها اذا شارت در کتاب کلی این آمده و سماه کسب الحجام اذا شارت و اجر الزانیه نستجبه ثمر الخمر یا خمر و عمر رشافل هو فهوال کفرو کفر به العظیم این به اصطلاح جزء کفر به الله العظیم استم چه این روایت به لحاظ سند الان مشکل داره و واضح هم را اشکال سندیش یک نقطه ای را من ارز بکنم علایوه همین واژه در روایت شما اینجا مرحوم صاحب وسائل طبق قاعده این که داره به همین مختصر اتفاق کرده بعدم فرمودن است که مرحوم صاحب وسائل فرمودنش به این که بله و رواه و شیخ به اسناد یعنی الحسین ابن سعید عن عثمان دئسا عن سماعه نحوه بود. و زاد و سالته عن الغلول فبال الغلول كل شيء غل من الاعمان و اکل و مال الیتیم و شبهه و سهتا انواع کثیره کسیره این که از اجایب اینه که این دعایت رو به سماعه نصف داده شده و اون نسخه شیفتوسی با نسخه کلی پرم میکنه این که از اجایبه و خیلی شبهه دعایت امارات و نروانه این هم این از اجایب کاره این هم از قراره کار این که ایشان مثلا روایت اموار منتران خوندیم قاله ار قلول کلوشه قلل من الیمان بعد به عکل مالیتی اون جام داشت و سهتا اموار کسی اون جام داشت فقط اون نصه اموار کس بول هدیام نبود اینجا همست عجوزانی و سمن الخمورم اون جام بود سمن الخمی و خمور و هم مرشاق الفقرم اون جام بود اینجام هست این خیلی عجیبه احتمال میدم مثلا کتاب عرضه شده، چی شده؟ براش که گه که این یک مطلب. یه مطلبی که خیلی بازدنجوم مشکل بر ما درست که این از که این دوست سماه، که الان خوندیم، به چند مات نامده؟ سعی میکنی؟ یکی همی بود که الان از تغییر، یکی که از کشور نیکودی. الان کشور نیکودی. که خب این توش تصویل حدیام الاشارت داشت حالا این راجعه ممکنه بود بله و لیکن این متن مرموم کلی معاصر طبیبا کلی عیاشی عیاشی این رو این روده بوده سماه قانقال ابو عبدالله الغلور کل شیعه قلحن الامان و عکل مالیتی و, مال و صحب شبهتان یا شبهتان باز دو مرتبه خود عیاشی داره در یه جای دیگه سماعت ابن مهران همه عبدالله و عبدالحسن موسا علیه السلام آل از صحبت و انواع اون منها کسب الحجام و عجر و زانیه و داره خیلی عجیبه که این نسخه رو که عیاشی داره کسب الحجامه ازا شارت شده نداره خیلی تنجوب مرحومه به اصطلاح شیخ توسی در کتاب تحضیح از یک مصدر دیگری از کتاب و سید داره که اون سند خوبه مشکل نداره نشون سند جامورانه نیست در اونجا داره منها کسبال حجام عید نداره باز شیخ توسی در کتاب تحضیح و استفساد نوشته بهادن اصنات سماعه قال از سخت و انواع می کسیده منها کسف الحجام اینه خیلی حجیبی واقعا یکی از عجایب کار این که در روایت سماعه کسول الحجام آمده که در بقیه روایات نیست این یکی این کسول الحجام هم تو نسخه کلینی آمده اداشتاره تو نسخه کلینی مطلقه دو یعنی چطور آزم صورت سونیا هست صورت ما نیست. وقتی در نسخه کلینی و نسخه کلینی رابی اضافه کرده خیلی عجیبه چون نسخه کلینی چون جامورانی و حسن علی نبی حمزه بستانی و خیلی عجیبه انصافش و بیشتر صفوا هم با همون متن کلینی شده یعنی بعدها ها گفتن کس که کسره یام اجازه داره اما شهرت رو میگن که نداره یا حرمت نداره این خیلی آنون دقیقه کنم برای شناخت مطمون خیلی بازوش کار باشه پس روایت سماعت ابن مهران که الان چند تا شو در این روایات سماعه مسئله اجر القاضی نیامده حالا اون در کسب الهجام اختلاف داشت اون نیامده این تا اینجا دو تا رواید خیلی محتناشون با هم خلاصش اینه که از این دو درداره درمید که رشوه در حقم کفرون بلا فقط در یکیش بود که در رشوه به انسان بسراز عجرالقاضی باشه صحته اما رشوه کفرون بلا بله امز بله. بله. کنم که همیه خب همین رشوه بده برای اینکه قاضی حکم هر دو حکم کنه در گرجستان را اندانند چون موایث قاضی چون وسیله اون کار دل... میدونن این چون وسیله است برای اینکه با قول خودش به قول با سنت چون لعنه لا راشیان مرتشی مرتشی همون شخصی که شما میگید حدیث بعدی در ماهنخفی حدیث شماره پنجه خوب تا اینجا معروف شد که مسئله به حساب شده یک متن روایت عمار جزء صحت مسئله الروقاضی اما تو روایت تمعه و یک متن دیگه اسمش شیعه متقض روی شافعی حکم ما کفر داره در مقابل اینها روایتی داریم مال شورای کهل شورای بعد میذونه شورای ثالث انا بن خب، یه زیاد داریم کتاب سکونی معروف و نسخه ای که نوحی نگن نسخه ای معروف کتاب همینه که مرحوم زون هاشم در گفت پخش شده سلو انا ابي عبد قال ان و همان الكرم و همان الخمر بعضی از نسخ عیاشی درسمون خیلی زی و محر البقی و رش و صحفت الحکم و اکرل کاهه این معنیسه چنوش با سنیا محافظه یکی سمن و کلبش محافظه با اوناست. یکی محر البقی یکی محافظه با اوناست یکی اکرل کاهه یک دو سه خان اضافه داره این یک دو در این روایت مبارکه رشت و صحف قرار داده شده دقیق. اون یکی واقعا مثلا شاید پیش که شما به روز عنایتی بوده، ظاهرا مش عنایتی بوده. یعنی در باب رشوه در حکومت دو قایفه روایت داریم. یک قایفه می خود رشوه خیلی حکومت سفته، یکی از مینم اونی که سفته اجر قاضیه. اینجا داره را سفته حکومت و رواه و شیخ به و این حدیث حدیث به اصطلاح تحریجات نشونه این حدیث به اصطلاح سکونی در این کتاب جامل احادیس هم میخونم تخریجات بهتر استخراج شده صفحه دیدیش تیزده تخریجاتی اینه یک اول کلینیست از کلینی مروم شیخ خصوصی در تحریج شیخ صدوق همین رو نیاورده در در اصطلاح خودش در بله به عنوان حدیث ساکونی نیاورده می‌خونید در خیال داره میشه حدیث امام محمد بن الحسن که مراد ابن الولید استاد ایشون با حدیث محمد بن یحیی العطا ابو جعفر از خود زنه که استاد کلی این هم محمد بن احمد سهار کتاب نوازه رو واضحه که از اون کتاب این کتابه. عمر، این امرش واضح نیست که خیلی در باشه ابن مغیغه که مراد عبدالله ابن مغیغه است. از کردیم اون چی تا نسخه محروف و نوفلیه نسخه درجه دو ماله عبدالله ابن مثلا شد تفصال دستاز از نوفلی باشه ده دوازده دستاش از است. ان جعفر ابن محمد ان سکونی ان جعفر ابن عبیه ان آبایی بینید من کلانه از درد سند دقیقی کتاب سکونی همینطوره دقیقی اگر داره نقص داره بینید تکیلش رو کنید سکونی ان جعفر جعفر ابن محمد سالان داره ان عبیه ان آبایی علی علیه قان این محن کامله که نموغیره کامل آورده بقیه ناقصه رو خاله از صحبتو به اصطلاح سمن المهیسه و سمن میکرد و خم تا آخر روشده در حق و هم جزء صحب دارده از کل در کتاب جعفریات روشده در حق الان کنید که خیلی زیاد داره اونجا هم روشده در حق رو جزوه صحب داره روشده در حق رو در جعفریات جزء روشد لیکن میاد اینشالله تا حالا خود اهل سنت هم نرکنه علیه در کتب اهل سنت آمده هنه علیه که رو شیعرها کفر به الله درده هم داره پس این یکی من جمله در کتاب تفسیر عیاشی آمده من جمله در تفسیر علی بن ابراهیم آمده تقرد کردیم اونجا هم آمده من جمله از جایی که آمده در کتاب فقیب آمده همه با عنوان وصیت نویل علی از که در جلد چهار یه وصیت نوی مفصلی چند تا وصیت دارستم میخید طولانی ها رو به علیه نویل که کرد این وصیت نویل تو این شکل ترکیب جلیه ترکیبی جلیه که همه نفری به این زب افتاده که ادهی از احادیت جمع کرده سندهش هر کرده یا علی اول علیه اولیه رو دوشته کرده مین جمله همین حدیثی که تکونیون زده بودند این صورتش علی من از همان البین که بعد از این جمله سکونی یک یا علی اولش اضافه کرده این هیئت ترسیلی جدید اما مفرداتش اصل داره پس ما الان از کتاب تفسیر عیاشی به سند مشهور دارید از کتاب تکونیه بلکه ما خود ما در کتاب سکونی شبهه داریم به هر حال در کتاب سکونی هم عروشت و فلحوف جزوه صحف قرار داده شده خبشت این هم پس تا اینجا دو تا حدیث پیدا کردیم که عروشت رو جزء صحف قرار داده از جمله روایاتی که باز این مضمون رو داره یعنی همین بحث درباب صحفه نده در کتاب فقی اولا که این لازم مجموع در رویان عبی عبدالله نهو قال از صحبه اموان کسی فا امان رشاب بالحق خب این مجموع از اشاره به روات اموار هست یا اشاره به روات سمانه هست در فقیه داره وقال از روزانیت سهتون سمن الکلب لیسه به کلب سیف سهتون من احتمال میدم چون صدوق میخواست یک جمعه بین روایات بکنه ما این محطه همه جایی نداریم این سمنال کلب لدیل ایسه به کلب سید نداریم سختون و سمنال خمر سختون و عجرال کاهن سختون و سمنال میتت سختون فا امر رشاف الحف با اول کفت بلده حالا صدوق با تمامه توجهی دیگه داش، اقلا میگفت اجر قاضی شغل تو، دیگه اجر قاضی چشه ورگه؟ به شافر حس هم این روایت تا حالا مطلله. بنابراین ان اجر مغنی و مغنیت شغل، اکثر چیزی که ما داریم، در هیچ روایت ما ندیدیم اجر مغنیه یعنی اجر مغنی میخوام. تو روایت ما کلمه مغنی نمیاد اصلا. روز مقدمیه رو خوندی، مغنیه داریم، اما مغندی، یعنی مذکر نداریم. الا در همین روایت محصد در کتاب صدوم بعد هم پیدا که این تو امالی از نشتایی اونجا هم آمده این باید خیلی عجیبه شما ما یکی از زیدی از امام صادق نارو و ابی قال اجر المغنی صحتون و اجر المغنی صحتون خیلی عجیبه که مرام صدوم میشه، احاطه داشته حدیث قبول داشته هم کاملا دور بوده و هر حال توی این روایت هم. عجز قاضی نیامده فقط به رئاشن آمده اومده این رو که الان هست از جمله روایاتی که ما الان داریم باز در ما نحوشی روایتی که در کتاب کافی نقل کرده و تهذیب هم از کافی محمد بن یحیی از کافی خود محمد بن یحیی استاد که از اجلا احمد بن محمد که اشعری باشه این محمد ابن سنان محروف این ابن موسکان محمد ابن سنان صاحب کتبه و یه مقدر کتابهاش رو احمد عشقی بگم امرده این یزید ابن فرقرد این باید با شواهد درست بشه این ابی عبدالله علیه السلام قال سأل توهن سو فقال هو و رشافل هو این باید فرقردش نقیدیست بخاطر محمد ابن سنان خودمون یزید ابن فرقرد هم تحمول داره لیکن در اینجا بو عنوانی که ارشا فالح حکومت سلطان و در مجمال بیانم اینطور گفته رو بیان عن النبي ان, ان الشوس هول ارشاتو فالح اینو الانم پیدا نکردم به عنوان رو بیان النبي مگر مرادش این دولت سکونی باشه و هو اول یا ابن مسعود و علی حسن و حسن حسن بصری ها اشتباهه پس تا اینجا یواشواش روشن شد که آیا رشوه در حکم کفر یا صحت است؟ آلمانی چه فرض می‌کنه؟ میشه که اگر قاضی هم هست یا نه قاضی پول میگیره به خود واقعی بکنه پول می‌گیره، گفتن باشه که سفت بودنش ثابته، نه بحث در اجل قاضیه. چه <تصح> یکی آلمانی رشوه گفتن شما پول بدید به مادین حکوم الله شما هم که قدم هستن محترم, محترم اما پول برداده. من آسر زادت هم میدونم آسر از به انما حکومت بکن این خود این هست نه این حرام نیانه خوشش؟ اختلاف کار کجاست؟ آیا اونوی شعه در صحه یا کفره این اجر مادی صحه اونا چه sallallahu alayhi wa sallamah.